بسم الله الرحمن الرحیم فصل احکام العدتی احکام عده عده چه هست؟ عده اون مدتی است که زن در اون مدت از ازدواج دست میکشه بعد از جدایی از شوهرش حالا چه به سبب طلاق باشه یا فسخ باشه یا موت باشه یا به عبارتی دیگر است که خداوند سبحان برای شوهر قرار داده که دست نگه میداره با اون زن مدتی رو که در اون مدت براعت رحم شناخته بشه شناخته بشه که در رحم دیگه چیزی نیست بچه نیست حالا چه با حیز باشه چه با ماه باشه اگر اون زن حیز نمیشه یا چه با وضع حمل باشه پس حقیست خداوند سبحان برای شوهر قرار داده که زن به انتظار میشینه مدتی رو که شناخته بشه با آن برایت رحیم و المعتد توالا دربینی زنی که به اده میشینه بر دو نوعه زنان عده نشین بر دونو یک متوفع عنها و غیر متوفع عنها یک اونی که شوهرش وفات کرده این هم به عده می دو اونی که شوهرش وفات نکرده بلکه شوهر ازش جدا شده حالا چه به سبب طلاق چه به سبب فسخ پس زن معتده بر دونو هی عده اونی که شوهرش فوت کرده و اونی که شوهرش فوت نکرده فالمتوفاق انها اونی که شوهرش فوت کرده انکانت حاملن، فا ها به الحملی اگر حامله باشه اونی که شوهرش فوت کرده پس عدهش با وضع حمل تمام میشه بچه که به دنیا آورد حالا چه یک روز بعد بود چه یک ماه بعد بود چه نه ماه بعد بود بچه که به دنیا آورد ادهش تمام میشه و امکانت حائلا اما اگر غیر حامل بود حامل نبود و کانت حائلا اگر حامل نبود فعدتها اربعت و اشور و اشوران این زن چار ماه و ده روز است اده این زنی که شوهرش فوت کرده و بچه در شکم ندارد چار ماه و ده روز است اما وغیر المتوفعنها اون زنی که شوهرش وفات نکرده بسبب طلاق یا فسخ جدا شده امکانت حاملا اگر این زن حامله بود باردار بود فعدتها به وضع الحمل ادهش تمام میشه با وضع حمل حالا وضع حملش هر چقدر طول کشید شانس خودش وإن كانت حائلاً، أما أغر حاملة نبود، إن جاً چند حالة داره، وهي من ذوات الحيز، أغر أزوان الزناني بود كحيز داشت، عادة ماهيانة مشود، فعدتها ثلاثة قروئين وهي الأطهرون، بس إددية إن زان سقره هست، سپاكي، سپاكي، أزش رد شد، ادهش تمام میشه و انکانت صغیرتن او آیستن اما اگر کوچک بودو حیز نداشت یا آیست بود حیز نداشت فعدتها ثلاثت و اشهر پس ادهش سه ماه است ببینید اونی که شوهرش نمرده اگر حامله بود ادش با وضع حمل تموم میشه اما اگر حامل نبود بسگی داره که آی حیز می شود یا نه عادت ماهیانه می شود یا نه اگر عادت ماهیانه میشد سه پاکی هست ادش و اگر نمی شود ادش هست والمطلقة قبل الدخول بها لا عدت علیها و زنی که تلاق داده دا شده است. و شوهر با او آمیزش نداشته است، هم بستری نداشته است، دخول نداشته است، منظور وطعه فی الفرج، لا علیها این زن ادعی ندارد، البته متلقه ها. پس اگر شوهر باش نزدیکی نداشته بود، آمیزش نداشته بود، منظور، طلاقش و... داد عده نداره اما اگر نزدیکی نداشته بود آمیزش نداشته بود و شوهر فوت کرد عده داره خود. و عدت الامتی بالحمل که عدت الحرة و عده کنیز به حمل یعنی کنیزی که ك... حمل در شکم دارد کنیزی که باردار هست ادش که عدت ادش مانند زن آزاده است. یعنی با وضع حمل ادش تمام میشه و اما اگر نه کنیز بچه نداشت در شکم حیز میشد ان به قرآن اینجا دو قرآن إددش هست دو باكي وبالشهوري أن الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليالي أما أجر إددش بمهبوط أجر إددش بشي بوط بمهبوط اگر شوهرش وفات کرده بود ان تعتد بشهرين و ليال لیال اگر این کنیز شوهرش وفات کرده بود ادهش چقدر هست دو ماه و شب نصف آزاده و ان اطلاقی ان تعتده بشهرین و نصف اما اگر کنیزو که ادش به ماه بود، قرآن نداشت، یک ماه و نصفی به اده می نشیند تدت به شهرینی کان اولا و اگر دو ماه می که اولا هست اگر دو ماه می اولا هست پس ایده زن آزاد رو توضیح داد بعد از اون اومد و اده کنیز رو توضیح داد کنیز اگر حمل داشت ادهش مثل آزاده با وضع حمل تمام میشه اما اگر با قرع بود یعنی دارای حیز بود خب دو قرع می اما اگر دارای ماه بود یعنی ادهش ماهی بود حیز نداشت اگر شوهرش یا شوهرش وفات کرده بود آه شوهرش وفات کرده بود بچه نداشت اینجا دو ماه و پنج شب به عده نشینه. و اگر این زن کنیز و طلاق داده بودند یک ماه و نصف که گفت اگر دو ماه بشینه که اولا هست فصل انواع المعتدتی و احکامها حالا که احکام عده رو بیان کرد انواع معتده رو و احکام اونه رو بهان میکنه زنی که به اده نشسته این خاطر شوهر نشسته این است که خداوند برای شوهر قرار داده احکامات شو میکنه میگه ویجبو للمعتده تیر رجعیتی از سکنا و النفقه. واجب است برای زنی که در عده هست و البته است. یعنی شوهر میتواند اون رو بازگرداند السکنا و النفق. واجب است مسكن و نفق. واجب است که نفقه و مسکن این زن داده بشه. پس اون زنی که به نشسته است و رجعی است، یعنی میشه بازش گردوند شوهر اون رو سکنا و نفقه برای این زن واجب است. و یجب للبائن السکنا دون النفقه الا ان تكون حاملا اما برای زن اونی که کامل جدا شده است و حق رجوعی نیست این براش سکونت مسکن واجب است اما نفقه نه مگر اینکه حامله باشد مگر اینکه باردار باشد ویجب علی المتوفى عنها زوجها الاحداد و واجب است بر اون زنی که شوهرش وفات کرده است احداد احداد تشاست و هو الامتناع من الزینه و یعنی دست کشیدن از زینت از خوشبوی خودشو شیک نکند تیپ نزند آرایش نزند از زینت بپرهیزد پس اونی که شوهرش فوت کرده در اون چهار ماه و ده روز احداد هم باید بکند و على المتوفا زوجها والمبتوتة ملازمتو البيت الا لحاجتید و اون زنی که شوهرش فوت کرده است و, ال و علی المتوفه انها زوجها و اون زنی که شوهرش فوت کرده است و المبتوته و زن مبتوته یعنی اون زنی که کاملا جدا شده است با این هست جداییش مانند زنی که خلعه کرده اون زنی که ستا طلاق داده شده ملازمت البیت ملازمه بیت باید در اون خونه بمونند الا لحاجت مگر برای نیاز پس وعلا المتوفا انها زوجها والمبتوتتو ملازمت البیت الا لحاجت این توضیح شمین هست که بر اون زنی که شوهرش فوت کرده است و بر اون زنی که دیگه جدایی با این رخ داده است که بر, بر بازگشتی نیست باید تو خونه بمونند مگر برای حاجت مانند این که برای خرید غذای بره بیرون که خوب این داستانش جدایه اشالله بارندگی خیلی خوبی شروع شد خب بسم الله فاصلون ال استبراء, استبراء, استبراء هم زن منتظر میمونه مدتی رو به بسبب تازگی ملکیت یا زوال ملکیت ازش یا بخاطر براعت رحم از حمل خب من استحدث ملک امتین هر کسی گردید یا <ساق> هر کسی که منتقل شد به برای او ملکیت کنیزی ومن استحدث ملك امه یعنی هر کسی که منتقل شد به او ملکیت کنیزی هر کسی که مالک کنیزی شد تازه هر عليه الاستمتاع بها حتی يستبرئها حرام است بر این انسان بر این مرد استمتاع از این زن بهره بری از این زن استمتاع جنسی از این زن حتی استمره تا اینکه که استبراش بکنه به چشک؟ امکانت من ذوات الحیز به اگر اون کنیز از اون بود که حیز داشت عادت ماهیانه داشت به یک حیز به یک حیز استبراش بکنه یعنی دست نگه داره یک حیز که شد بعدا استمتا کنه و انکانت من ضوات شهور اما اگر این ام کنیز از ضوات شهور بود این حیز نداشت و از ضوات شهور بود خب شو از ضوات شهور مطلق تر از بحث حیز هست اگر از ضوات شهور بود بی یک ماه فقط یک ماه دست نگه داره و بعد از اون دیگه کنیز شو میتونه استفاده ببره و اینکانت من ضوات الحملی بالوضوع. اگر این کنیز بچه شکم داشت که خب بگذاره وضع حمل کنه و اذا مات سید و ام ولدی استبرات نفسها کل امتی و زمانی که فوت کرد سید ام ولد مالکش استبرات نفسها این هم استبرام میکنه کنه این زن کل امت و مانند کنیس کنیز است استبراه نفس میکنه استبراه میکنه همین مدت هایی که اینجا خوندیم یعنی یک حیز و بحث ماه یک ماه اگر ذات حمل بود با وضع حمل همینجا خوندیم فصلون الرضاع فصل بعدی در رابطه با شیر هست شیر دهندگی شیر خوردن و ما كي دانه بسانو شير خوردان بشكل مطلق وإذا أرضعت المرأة بلابانيها ولدا وزمانك شير داد زن با بسانش فرزن ديرا صار الرضيء ولدها بشرطين، مي گرداد إن شير خار فرزن دون زن فرزن دون شير دهن دي البته بتو أن يكون له دون الحوليني شرط اول اینه که اون رضی اون شیرخورنده کمتر از دو سال داشته باشد. و ثانی و شرط دوم، انتورضیعه خمس رضاعات متفرقات. شرط دوم اینه که پنج مرتبه اون بچه رو شیر بده. پنج بار اونو شیر بده، به شکل جداگانه. به شکل جداگانه. و, و, و زوجها ابا له و میگردد شوهر این زن شیر دهنده پدر اون شیر خورنده دیگه شیر فقط که مال زن نیست پس این زن که شوهر داره شوهرش فر... پدر این شیر خورنده می گردد و یحرمو عل المردائی التزویجو الیها و حرام می بر مرضع این برایونی که شیر خورده بر رزی و حرام می‌گردد بر شیرخورنده خورنده از الها ازدواج با اون مادر شیر دهنده. بله با اون شیر دهنده. یک ازدواج این پسر چی؟ اگر پسر بود ازدواجش با اون مادر شیر دهنده چی می‌گردد؟ حرام می‌گردد. بر عكس اگه دختر بود با اون پدره. و کل من man nasabha و حرام می‌گردد بر این رضی ازدواج با هر کسی دیگه که هم است با این مادر شیر دهنده پس و حرام می بر شیرخورنده ازدواج با اون شیر دهنده و به هر کسی که هم نسبت است با این زن یعنی همچنین جایز نیست برای این شیرخورنده ازدواج به هر کسی که نسبت دارد به این زل بر این اساس مادران این شیر دهنده برای این شیرخورنده حرام هستند چون مادر بزرگانش می گردند. دختران این شیر دهنده برای این شیر حرام میشند چون خواهران شیریش می گردند شیردهنده شیر دهنده برای این شیرخورنده حرام می گردند چون خاله هاش هساب می و یحرم عليها التزويج إلى المرضى و و حرام میشه بر زن شیردهنده ازدواج با اون مرضع اسم مفعوله با اون شیرخورنده پس حرام میگردد بر اون زن زن شیردهنده ازدواج با اون رزی با اون شیرخورنده و با فرزندان اون شیرخورنده دون کان فی درجته نه اون افرادی که در درجه شیر خورنده هستند یعنی برادران شیر خورنده که در درجه هستن زن میتونه باشون ازدواج کنه با برادرای اونی که از این زن شیر خورده چون زن فقط اون شخص و شیر داده برادراشو که دیگه شیر نداده او اعلا طبقتن منه و همچنین جایز از ازدواج کنه با اونایی که طبقشون بالاتر از شیر خورنده هست یعنی با پدر شیرخورنده با پدر بزرگ شیرخورنده میتونه ازدواج کنه این زن پس این زن نمیتونه با خود شیرخورنده ازدواج کنه و با بچه‌های شیرخورنده نه اونایی که در درجه شیرخورنده هستند یعنی برادرانش نه اونهای که بالاتر هستند یعنی پدرانش با اونها میتونه ازدواج کنه بله تا اینجا half East.